بامدادان که ز خلوت گه کاخ ابدا شم اخاور فکند بر همه اطراف شعا برکشد آینه از جیب افق چرخدران به نماید روخ گیتی به هزاران انوا در زبایای تربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر جام در قهقه آید که کجا شد مننا وضع دوران به نگر ساغر اشرت برگیر که به هر حالتی این است بهین به اوزا طره شاهد دنیا همه بندست و فریب آرفان بر سر این رشته نجویند نزا عمر خسرو طلب ار نفع جهان میخواهی که وجود ایست اتا بخش کریم نفع مظهر لطف ازل روشنی چشم عمل جامع علم و عمل جان جهان شاه شجا